قسط های هزار یک شب شب پنجاه و ششم بدوی با آن جماعت گفت اشتران آماده کردند بدوی بر اشتری نشست و نزهت و زمان را با خود سوار کرد و همی رفتند که پس از سه روز داخل شهر دمشق شدند و در کاروان سرای سلطان فرود آمدند. ولی نزهت و زمان را از رنج سفر و از اندوه و حوزن گونه زرد شده و همی گریست. بدوی با او گفت ای دختر روستا اگر تو از گریستن باز نیستی تو را نفروشم مگر به یهودی پس بدوی برخواست و نزهت و زمان را در مکانی بگذاشت و خود نزد بازرگانان رفت و با ایشان حدیث همی گفت تا اینکه گفت من کنیزی زی آوردم که برادرش بیمار است برادر او در شهر قدس گذاشتم که شربت و دارو بخورد و قصد من این است که کنیز را بفروشم ولی از روزی که برادرش بیمار گشته پیوسته گریان است و دوری برادر بر او دشوار گشته همین خواهم که هر کس به او مشتری شود با او به نرمی سخنگوید. با او بگوید که برادر نظار و رنجورت را در شهر قدس به خانی خود گذاشتم که شربت و دارو بخورد هر که با کنیز چنین گوید من کنیز به او ارزان می‌فروشم. آنگاه مردی از بازرگانان برخاست و سال عمر کنیز از بدوی باز پرسید. بدوی گفت با کره و نورسیده و خردمند و با ادب و خداوند حسن و جمال است. ولی از روزی که برادرش را به شهر قدس فرستاده ام، از دوری او محزون گشته و اکنون تنش نظار و گونه اش زرد است بازرگان چون این بشنید با بدوی به نزد نزهت و زمان روان شدند و بازرگان با بدوی گفت ای شیخ عرب بدان که من با تو می روم و کنیزی که تو او را به عقل و عدب و حسن ستودی می خرم ولیکن با تو شرطی دارم اگر آن شرط قبول کنی، قیمت کنیز به تو میدهم، وگر نخ خرید و فروش برهم میزنم. بدوی گفت، تو را هر شرط باشد با من بکن. بازرگان گفت، مرا در نزد سلطان است و آن این است که به پدر خیش ملک نعمان نامه بنویسد و مرا به او بسپارد. هرگاه کنیز بپسندد و حاجت من برآورد من قیمت کنیز بدهم و اگر نه کنیز را رد کنم. بدوی این شرط بپذیرفت. هر دو با هم برفتند و بدان مکان که نزهت و در آنجا بود برسیدند. بدوی به در حجر ایستاده نزهت و زمان را آواز داد. نزهت و زمان جواب نگفت و گریان شد بدوی با بازرگان گفت کنیز همین است. تو با او بدان سان که گفتم به نرمی سخن بگو و با او مهربانی کن. بازرگان به حجره درآمد. آمد. نزهت و زمان را دید دختری است قمر منظر و بدی الجمال. او را خطاب کرده گفت هورا مگر زروزه رزوان گریختی جانا مگر زخانه خاقان گریختی یا زنده گشت باز سلیمان پادشاه تو چون پری ز پیش سلیمان گریختی؟ بودند مادر و پدرت بر تو مهربان آخر چه افتاد که از ایشان گریختی؟ پس بازرگان سلامش کرد و به مهربانی بنواخت و از حالتش باز پرسید. نزهت و زمان به بازرگان نگاه کرده دید، که مردی است با وقار و خوش و روی. گفت گمان دارم که این مرد به خریدن من آمده اگر من از این روگردان شوم در نزد بدوی ستمگر خواهم ماند و او مرا به ضرب تازیانه خواهد کشت و امید خلاص از این مرد بیشتر است تا آن بدوی ستمگر و شاید که این مشتری به شنیدن لحجب و سخنگفتن من آمده است به هزین نیست که من جواب نیکوگویم و به گفتار خوش پاسختهم پس با زبان فسیح گفت علیک سلام و رحمت الله و برکاتو و اما اینکه احوال مرا پرسیدی دشمنانت به روز من مباد این بگفت و خاموش شد بازرگان را از سخن گفتن او عقل از تن و هوش از سر برفت و با بدوی گفت که قیمت این کنیز چند است که این کنیز بس بزرگ منش است بدوی در خشم شد و گفت کنیز مرا بدراه مکن و چنین سخنان مگو او از پسترین مردم است و من او را به تو نمی فروشم بازرگان از بدوی چون این سخن بشنید دانست که پیریست کم خرد. با او گفت دل خوش دار که با همین عیب که تو گفتی او را همی خرم. بدوی گفت قیمت چند خواهی؟ بازرگان گفت فرزند را جز پدر کس نام ننهد. تو مقصود خیشتن بیان کن. بدوی گفت، باید که تو سخن بگویی. بازرگان گفت، یا شیخ العرب، من دویست دینار به تو میشمارم و خراج سلطان و سایر چیزها با من باشد. بدوی چون این سخن بشنید، در خشم شد و بانگ به بازرگان زد و گفت برخیز و به راه خیشتن رو اگر دویست دینار به پارچه ابای کهنه که در سر دارد بدهی نخواهم داد و من کنیز را نمی فروشم نگاهش هم دارم که اشتر به چراند و آسیا به گرداند پس بانگ به نزهت و زمان زد و گفت ای پست ترین روستاییان تو را نفروشم و با بازرگان گفت من تو را خردمند می دانستم به خدا سوگند که اگر از پیش من نروی سخنان ناخوش و درشت با تو بگویم بازرگان با خود گفت که این بدوی دیوانه است و قیمت این را نمیداند و در قیمت او هیچ چیز با من نخواهد گفت و این کنیز به یک خزانه گوهر می ارزد مرا چندان مال نیست که قیمت او طباند بود ولی من هر آنچه که خواست دارم اگر بدوی در بهای او از من بستاند مزایقه نکنم پس بازرگان روی به بدوی آورده گفت یا شیخ العرب تنگ دل مباش؟ با تندی سخن مگو؟ و با من بازگو که این کنیز جامعه حریر و زیور زرین چه دارد؟ بدوی گفت این پلیده که کنیزان را حریر و زیور به چه کار آید؟ سزاوار او این پارچه است که به خود پیچیده؟ بازرگان گفت اگر اجازت دهی روی وی را بگشایم و او را چنان چه رسم مشتریان کنیزان است باز بینم. بدوی گفت خدا تو را نگاه دارد این تو و این کنیز آشکار و نهانش باز بین و اگر بخواهی اوریانش ببین. بازرگان گفت پناه بر خدا من جز روی او جایی نبینم. پس بازرگان شرمگین پیش رفت چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب داستان فروب است.